بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندران برگ و نبا خوش های زار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه معشوب در این کار داشت یار اگر ننشه با ما نیست جای اعتراض طاغ کامران بود از گدای آرتاخ در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست خرم که از نازنینان بخت برخوردار داشت خیز تا بر کل که آن نقاش جان افشان کنین که همه نقش عجب در گردش پرگار دا تا بر کلک آن نقاش جانفشان کنیم که همه نقش عجب در گردش پرگار داشت گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکنن شیخ آن خرق رهن خانه خما داشت وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت چشم حافظ زیر بام قصر انحوری سرشت شیوه جنات تجری تحت الانها داشت